بسم الله الرحمن الرحیم دلو حبول بلا قوته اللہ بالله لبی نظیم و الله اللہ عنو سیدنا محمد محمد محمد دلوح لبیت تیبین تاهرین و حدات المهدیدین و منتجبین سَنُجْمُ مَوْبَقِهِ الله فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم فَلَمَّا نَظَرَ الْقَوْمُ إِلَى ذَلِكَ قَالُوا غُلِبْنَا وَبَسَطَ الْكِبْرَ فَمَرُّهُمْ فَلَيَأْتِيَنَّ نَصْبُهُمْ وَيَبْقَى نَصْبُهُمْ فَأَمَرَهَا فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ نسبها. فأعجب اقبال وأشد هدايا فكادت تنتفوا برسول الله صلى الله عليه وآله فقال محمد صلى الله عليه وآله سواد مبارك برادران و خواهران بزرگوار در سخنان بیبدیل و بیزوال امیر بر خان گسترده کلامش میهمان شده ایم و به فضل نایت الهی بهرهها میبریم از خطبه گرانسنگ سد و نود و دوی قسمت های پایانی خطبه را من خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. جو نیست که امیرالمؤمنین المؤمنین اشاره فرمود به سوابق خیش در محظر نبی مکرم اسلام و دانشان مختگی خود در محظر پیامبر و شمی از کبرها و استکمارهایی که اساساً این خطبه موضوع آن چنین مقوله است در این بخش انتهایی مطرح می فرماید. خاندیم که فرمود لغت کنت ما من با پیامبر بودم آمدن ملنگی از بریش به پیامبر گفتند که شما ادعای بزرگی کردی سفارت و رسالتی رو اعلام کردی که کسی از خاندانت تو اعلام نکرد است و دلیل سند نشانه ای را اکن پیامبر فرمود اگر نشانه ای را شما تصدیق می کنید شهادت با اون می دهید گفتند بله خب حالا شما بگوید ما چه برای شما بکنیم گفتن بسیار خوب اگر این چنین است. بگو این درختی که پیش روست از جای خیش با ریشه برون آید و به سوی تاهاید. بنا شد اینها ببینند تصدیق کنند ایمان بیاورند شهادت بدهند اگر این چنین شد. خاندین در نهایت زیبایی که البته قبل از اون پیامبر خبر دادن به اینها. ها. بسیار رو. من چنین خواستهی رو عملی می اما شما ایمان نمیآورید به اون. در میان شما کسانی هستند که در چه های بدر فرو خواهند رفت. در میان شما کسانی هستند که احزابی رو تشکیل می دهند. نه احزابی وجود دارد، نه بدری، نه مدینهی، نه هجرت پیانبر به مدینه هنوز. اما رسول خدا حتی این نکات رو هم بازگو کردن که اگر عقل سلیمی بود، و منصفی می بود به خود می آمد اونگاه خطاب چند به درخت انکنت تؤمنین انکنت تؤمنین بالله و یوم الاخر و تعلمین هنی رسول الله گفتیم دیگه اینها رو که رسول خدا با درخت سخن می گوید و درخت رو مورد خطاب قرار میدهد و این ارتباط رو می تواند با اجزاء وجود و هستی برقرار کند از یسو توان مندی و ظرفیت اجزای وجود است از یسو سو شخصیت و نفس و دم و وجود نبی مکرم است از یه طرف خاصیتی است که در اس های است به اسم خداوند از یه طرف دستی است که دست موسااس که این دو ما هم ترکیب می شود و چون این اتفاقی در تاریخ میافتد هر دو در کنار هم زمینه و غری نمی شود خب گاه شنیدید این رو از باب حلاوت و شیرینی آن عرض می کنم که گفت استانه هنانه از هجر رسول ناله ها می زد چه عربا به اونگول استانه هنانه مشرف میشید شید مسجد و نبی می کنید که در کنار ستون و استوانه هنانه بیستید و درکعت نماز بگذارید حنانه یعنی ناله کننده چوب خوشک است پیامبر برو تکیه میدهد و خطابه میخاند در مسجد النبی پیامبر ها به سن گذاردند اصحاب دلسوزی کردند یه منبر دو پله برای پیامبر ساختند نصب کردند که رسول خدا رو منبر بنشینند خطابه بخواند. اون صبح روزی که پیامبر اومدند پار رو منبر گذاردند یه صدای ناشناخته ای در تمام فضای مسجد و نبی منتشر شد. هیچ کس نفهمید. پیامبر رفتن کنار این تکه چوب منده خشک خرما دستی برو کشیدند. فضا آرام شد. فرمودند به خدا سوگندگر آرامش نمی کردم تا قیام قیامت ناله می زد. استان از هجر رسول ناله ها می زد. چهار اون قولد. چیزها نیست در وجود و در اجزاء هستی اون شعور پنهان و مرموز از اون صد توانایی که در وجود انسان در ایجاد این ارتباط وجود دارد که نفس انسانی میتواند چون این ارتباطی رو با اجزا آفرینش برقرار کند. که از نکات مهمی که در اجاز پیامبران وجود داره اینه که اون عصا در دست دیگری چنین خاصیتی نمی کند و چنین کاری نمی انجام بده هیچ کس با اون اصا هیچ کس تا اون نفس رو نداشته باشد چون این اشارتی بکند به درخت یا عیت هش هشجره. رسول خدا اشاره‌شون رو فرمودن یا ایتو هش هشجره. امیرالمؤمنین شهادت داد و لذی به بالحق به خدام این سوگند یاد میکنم که پیامبر مبعوث کرد لن به اورونقه ها از ریشه برون آمد درخت و جاءت ولها در شدید آمد با یک همهمه ای آمد با یک صدایی شدید و حرکتی و صوتی مانند بال زدن پرندگان این ستا از حرکت درخت می آمد حتی وقفت بین دی رسول الله مرفرفتن بالش پهنه شده یعنی برگ ها پهنه شده در منظر نبی مکرم بخشی از شاخه های اون بر فراز سر مبارکشون یه بخشی روی من قرار گرفت که در راست پیامبر ایستاده بودم فلم ما نظرن قوم الازالک به اینجا رسید سخن ما درست من یه جمله رو کنم قبل از این که بررسی کنیم اون سخن ناتمام دیروز رو این ماجرار رو عزیزان یعنی این معجزه پیامبر رو استذار دارید که پیامبر مکرم اسلام هکیه رسول خدا یا بفرمایید امده معجزه پیامبر بنابر وضعیت شرایط و شخصیت رسول خدا که خاتم و نبی و است و باید کار رو به پایان برساند رسولی نیست که در یه برهه زمانی خاص رسالت او و مسئولیتش باشه یعنی پیانبری که باید تا قیام قیامت رسالت او و دین او و آیین او جاودان و باقی بماند لذا معجزهای هم دلیل صدقی هم که برای ادعای خود دارد باید جاودان و باقی باشد نه شکافتن شكافتن قلزم دید ما فلق ما طبیبانیم شاگردان حق نماننده زنده کردن چهار نفر توسط ایشاو ی مریم نمانند دیگر معجزات عصای موسی و میجاد به ایزان بود با چیزی باشه که جاودان باقی بماند او با نیست مگر کتابی که قل لننش کمعت الجن و الانس الا ان یاتوا بمثل هاذ اگر جن و انس جمع بشن به مانند این قران بیاورند نمیتوانند بیاورند ولو کانه با ان زهم لبعض ظهیرو ولو این که شرق و غرب با هم بنشینند تمام به شریعت بنشینند باید معجزه معجزهی باشه که امروز شما بگذارید رو میز با دنیا صحبت کنید باید یه معجزهی باشه که امروز ببینند انسانها بشنوند بخوانند، بگن اشهد و انلا اله شهادتشون رو بازگو کنند به ایمانشون رو نکته این است که چون این معجزه جاودانی پیامبر اسلام نیاز داشته است به دلیل جاودانگی مرام و مکتب خودش اما در این حال رسول خدا معجزات حسی تکوینی طبیعی از قسم و جنس این معجزات پیامبران الهی داشتند حالا شق غمر در جای خودش با همه مباحثی که دارد یا مقولاتی مثل این در زندگی پیامبر ثبت شده و ضبط شده است مواردی که اینها را هم به تعبیر عرب ها موجبتن جزئیه پیامبر در یه مواردی داشتن که این هم لازمه ای کار نوبت است. بزرگان اینها رو نوشتند در کتاب ها شده در زندگی پیامبر در تاریخ پیامبر در سیره رسول خدا مضبوط هست اینها این یکی از این شواهد حاله اینی که امیر المومنین در اینجا در این خطبه این 122 را نغم میکنن عرض میکنم خدمت شما شاره معتزنی ابن عبل به اینجا که میرسد میگاد و اما امرش شجره علتی دعاها رسول الله صلی الله علیه و آله اما موضوع این درختی که پیامبر او را سدازد و حرکت کرد که علی میگوید دقت بفراموید فلحدی سلوارد و فیها کثیرون فلا حدیث الوارد و فیها کسیرون. این نقل بسیار مشهوریست ابن عبل حدید میگوید هفتم میگه این نقل بسیار است، مستفیزون گاهی خبر رو یه نفر دو نفر نقل کردن بین میگن خبر آهاد گاه خبر اونقدر نقل شده است که دیگه شدت یافته از نقلون میگن مستفیز استفازه پیدا کرده از دین خبر بین این خبر میگن خبر مستفیز میفهمد مستفیز و خیلی نقل کردن دین رو قد زکره المهدفون فی هم اینو بزرگان اهل حدیث نقل کردن ذکر اهل متکلمون فی معجزات الرسول متکلمین در بررسی موجزات پیامبر گفتند و اکثرون رو علی خبر فیه انا الذی جه فی خطبه تحمیر المؤمنین و همه اینها که نقل کردن با همون شیوهی نقل کردن که علی در نهج بلاغ میگوید ابن الحدیث میگه با همین شیوه نقل کردن و من هم من يروي ذلك مختصرا بعضی ها نقل کردن کوتاه گفتن یعنی گفتن انهو دع شجره فاقبنت تخذ الیه العرزخه دو همین مقدار گفتن تو کتابشون که یه روزی پیامبر درختی را صدا زد درخت آمد مقابل پیامبر تواضع کرد ابن ابن اما قد ذکر البیهقی فی کتاب دلائل النبوه از بزرگان محدثین و مورخین اهل سنت صاحب کتاب دلایل النبوضه بیحیقیس. قد زکر البیحیقی فی کتاب دلایل النبوه حدیث الشجره. رواه ایزن محمد ابن اسحاق. اولین کسی که سیره پیامبر رو نوشته، یعنی روش زندگی پیامبر رو نوشته، ابن اسحاق است. ابن خونین، ابن اسحاق، اینها مقدماهان. فی کتاب سیره والمقاضی علاوَ جَنَاخا. ابن اب الحدید یه گروهی رو نام میگیریم نمی‌خونم. کسانی که اینها کاملا این ماجرا رو به این حدیث و این حدیثش حجره رو نغره کردن و بازگو پس بلا برای این اینی که امیرالمومنین اینجا میفهمن این یه ماجرای آشنا و شناخته شده است در تاریخ زندگی پیامبر مکرم اسلام این نکته بود که قابل ذکر بود قبل از ورود و بررسی سخن اینها بسیار اینها هنگامی که دیدن کار پیامبر رو چه گفتند مگر رسول خدا از ابتدا از اینها تعهد نگرفت به تعبیری نگفت اگر دیدید ایمان میارید بعد اقرار میکنید شهادت میدید گفت... گفتن نم قالو نم دیدند اما بعد از اینکه دیدن این سحنه را قالو علوان و استکبارن فمرها این کافی نیست گفتی درخت آمد کافی نیست ممکن اینجای ترفندی باشه فمرها فلیعت کنصفها بگو نصفش بیاد جلوتر و یکم قا نصفه و نصفش هم بمونه درخت نصف بشه فامر او پیامبر امر کردن به درخت به اذن الله فاقبل الیه نصفها نصف درخت اومد کا اقبال اقبالن و اشد دویان با چه رو آوردنی با چه اون دوی و صدای مبهمی گرض کردیم با چهاروری آمد در حدی که فک در تلتف و به رسول الله که دیگه نزدیک بود درخت بش ازسببت به پییان برد نزدیک شد فقالو من بخونم بعد این چهار کلمه رو باید بررسی کنیم. فقالو کفرن و اتوا دیروز عرض کردم خدمت اون صنعت. هشف ملیح یعنی فقالو اون کفرن و اتوبان رو ازیان که ختمه برید فقالو کفرن و اتوبان رو بذارید داخل پرانتز، اون کفرن و اتوبان رو فقالو چی گفتن؟ فمر از فمر جمله این هاست قول این هاست لذا اون کفرن و اتوبان باز هشف ملیح یعنی میشه نباشه و میشه باشه حالا هست؟ از میکنه فعال و کفرن و اوتوبا چی گفتن دوباره پیامبر؟ گفتن نه این کافی نیست بازن. فمر هازن نصف بگوی نصفی که اومد فلیرجر الان نصفه. بره ترکیب بشه با اون نصف قبلیش. کم هاکان همونطور که بود. فعمرهو صلی الله علیه واده فرجعه پیامبر فرمودن درخت برگشت این نصف سر جان خوده. ابتدا گفتن که بگون درخت بیاید پیامبر به امر الهی بهزن الهی خواستن این اتفاق افتاد گفتن بگو نه کافی نیست نصفش بیاد نصفش بمونه پیامبر گفتن چنین شد گفتن نه بگوی نصف برگرد جای اولش فرمودن چنین شد یعنی سه تا اتفاق پشت سر هم رو سه تا نکته این چنینی رو رسول خدا عمل کردند اما اینها نپذیرفت چهار تا کلمه قرآن برای عدم پذیرش اینها میگرد که این چهار تا کلمه برای عدم پذیرش هر کسی در طول تاریخ در قبان چهره پیامبران الهی و ایمان دیده میشه امیر تو اون قسم بالا گفت آلو وقتی دیدن درخت اومد گفتن نه بگون اسمش بیاد بدفرمود الوون وستکبارن نه پذیرفتن وسط کار گفتن این کافی نیست همه درخت اومده نسبش بیاد نسبش برگرده چرا اینو گفتن امام محمد اولو من اولو به معنای بلندی طلبی ده استکبار رو هم همینجا در این به در نوبت‌های قبل اون سفر قبل خدمت عزیزان هست کردیم ببینید که تکرار می‌کنم تکبر استکبار سوتواجو داریم تو قرآن کبر اون مایه اولی است که تو وجود انسان است مکته اولیه دیشب به بحانه اون کلام زیبای فاطمی و صلاط تنزیحن نکم انهل کبر در خطبه و خطابه قرا صدیقه تاهر فرمود جهل الله الایمان تدهیرن نکم من الشرک باز کرد باب فلسفه موضوعات دینی و مباحث دینی رو خدا شرک رو ایمان رو قرار داد که وجود شما رو از شرک بشوید و نماز رو قرار داد که شاخ کبرتون بشکند و این خضورتون در پیشگاه او، اون انانیت و تفرعون درونی و کبر درونی رو از شما بگیرد ببینید کبر یه چیزیست عزیزان که تو جان و روح انسان هست انفی صدورهم الله کبر جای کبر تو سینه است. سینه که میگی یعنی جان تو نفس انسان و تو روح انسان که در جان و وجود انسان هاست یعنی این حسی که انسان تفوق نمیپذیرد تفوق نمیپذیرد نمیخواد یک کسی از او بهتر حرف بزنه نمیخواد یک کسی از او بهتر بفهمه نمیخواد یک کسی از او بهتر داشته باشه جایگاه برابری داشته باشه و و و, و دوست میدانت خودش اون فرد اول توجه ها به او بیشتر محبت ها به او بیشتر موقعیت اقتصادی اجتماعی سیاسی همه چی او این حالت وجود انسان ها هست تو نفس انسان ها این حالت خود گرایی خود خواهی خود پسندی، خود برتری خود پرستی در غلش در وجود انسان‌ها است این ابر خب حالا این میمونه در وجود برای گروهی اما گروهی دست و پا میکنند که این رو نشان بدن یعنی بیاد از وجودشون بیرون از درون میکشندش بیرون تو رفتارشون نام این میشه چی میشه تکبر وقتی این چبر رو از درون میرن ظاهرش میکنن یه کاری میکنن که نشانش بدن یا در گفتار یا در رفتار میشه تکبر حالا اگر به شدت تلاش کردن که این رو توصیبه بدن نسبت به دیگران تلاش کردن در این جهت که ثابتش کنن میشه استقبار پس چبر تو درونه دیدنش در بیرون میشه تکبر افسایش و شدت گرفتنش میشه استقبار در جمع عبا و استکبر و کانم الکافرین در مدر شیطان خداوند میگه استکبار کرد مثلا اصرار داشت ابلیس که این رو به فرشتگان ثابت کنه که نه من سجده نمیکنم ما این این علا اون من اصرار به این داشت در پیشگاه خداوند لذا انگامی هم که خداوند به او گفت ما منع که تسجد اذ امرتوک چرا وقتی من امرت کردم سجده نمی‌کنی زبان درازی کرد شروع کرد به ادعا کردن و حرف زدن و با خدا اولان کس خین ریاس اکا نمود پیشانواره خدا و ابلیس بود شروع کرد با خداوند مخاصمه کردن و اون مطالب رو باز گفت این استکباره امیرالمومنین در اینجا فرمود آلو اولو و مستکبار عجیبه من نکته‌ای که میخواستم دیروز به بهانه اون نامه اون عالم بزرگ دیار و خراسان رو از ایت الله جهاده های تهرانی رو و اون خاطرات خرد رو گفتم خدمت دوستان از برخورد اون بزرگ مرد بله یکی از آیاتی که شاید این حالت هست برای بعضی از اولیا خدا عزیزان که لحظات پایانی عمر نه یک ساعت دو ساعت شاید مثلا 20 ساعت موردی رو من ارز می کنم که چهل و هش ساعت تا مرگ فقط یک جملات بلب بل جاری شد تا جان داد فمن کان یرجو لقا عربه فالیع من عملن سالا من آو به عباد تربه احد این آیه رو خوند این بزرگ مرد تا جان داد تا چشمش رو بست فمن کان یرجو آیه پایانی سوری فمن کان یرجو لقا عربه کسی که دل و امیده به لقا الهی دارد فلی عمل عملاً سالحا عمل صالح می کند و شرک به خدابند نمی برزد آیه هشتاد و چهار قصص تلکت دار الاخره این مربوط مرهومی بود. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یردون علبن فی العرض و لا فسادا ما این جهان آخرت رو با تمام عرض طولش ملک تلق قرار دادیم قرار دادیم برای اونهایی که لا یوریدون فلعرز لا یوریدون فل فلعرز و نافساد که تو زندگی دنیا اولو نخواستن نخواستن حکمه بر دیگران باشن و سرکشی کردن و استکبار کنن و چنین حالتی رو اثبات کنم که لازمه این فساده اگر کسی چنین روحیه رو داشته باشه به فساد منتهی میشه کارش عجیب میگه خداوند در قرآن پس ببینید امیرالمومنین فهمد قالو اولو و استکبارن نه مشخص بود اینکه اومدن اینها گفتن آقا یه چیزی به ما نشان بده نه این بود که اینها پژوهشگر باشن حقجو باشن طالب ایمان باشن طالب حقایق باشن گم شده ای داشته باشن پی گم بگردن بخوان معرفتی به من خودیابی کنن خودشناسی کنن خداشناسی کنن نه خبری نیست اینا در صدد این بودن که شاید چیزی بخواهن که پیامبر نتواند پاسخ رو بده. بعد شخصیتشو تخریب کنن. رد روش ریش مگه نیست. فرعون چیکار کرد؟ چرا ساحرانش رو جمع کرد؟ یعنی می‌خواد شخصیت موسا رو به دیگران معرفی کنه؟ بگید فلمدا و انها که به بکل ساحر علیم. تمام اون قدرتمندان میدان سحر رو بگید از سراسر سرزمین مصر بیان. اما اومد بعد هم عالی تضمینشون کرد. هر چی میخواید در خدمتون هستیم. فقط بزنید زمین این را. فقط بزنید زمین در حضور مردم. مردم را بگید بیان. و موعد هم یو مزدینه ان یو شر و ناس زهان. عجیب ما آقلینا در تاریخ. چه روزی رو تحییم کنیم برای این کار؟ یا مزدینه. یا مزدینه یعنی روزی که مردم چکار میکنن به خودشون میرسن. تقتی اون از دغدغه کار و زندگی و اینها به در میان یعنی روز تعطیل یعنی روز جمعه یعنی آزینه آدینه به تعبیر فارسیان روز تعطیل انتخاب می‌کنیم که مردم وقت داشته باشن بیان گردشمای عمومی این کار انجام بشه خب بالاخره هدف این بود که موسا به زمین بخوره اما وقتی اینا اومدن با تو روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود تو در بازی اول دیدم. وقتی اینا مواجه شدن شخصیت موسی رو دیدن، آج و آج موندند این ساهران. آهای موسا، شما موسا گفت نخواهش میکنن، بفرمایید، شما عمل کنید. یه توصیه هم بهشون کرد، مراقب باشید دارید چیکار میکنید، فکر کنید به خودتون بیاید. انداختن کارشون رو جناب موسا انجام داد فقول قیسته هر رو توساجدین برخا گفتادن به تمام وجود گفتن ایمان آوردین به موساابق ها رو بعد فر اون شروع کرد ان نه آاض ل کبی رو کم ملهزی بعد گفت ها شما قبلا دیشبیه با موسی تبانی کردی این. و سابقه توش تبانی شده بود شکایت به فیفا بکنین این بود بررسی بشه این مشکلاتی داره این تبانی شده توش این یعنی دیگه نشد مسیر رو عوض کرد چرا چون هدف فرعون اولون واستکباران بود نمیخواست ببینه چه در چنته موسیاس موسا رو به آزمون که اثبات کند وضعیت خودش رو یا نکند اینا همون دداش رو داشتن اولون واستکباران به تعبیر عامیانه ساده این بنا نبود که بیدار بشن از خواب که چون خواب نبودن خودشون رو خواب زده بودن و بنا نیست بیدار بشن که اینا اینها در پیانن که یه جوری های اسباب و علب و استکبار رو خودشون رو ثابت کنن و این عزیزان رازی که در قبال حق گردن همیشه میماند بلند و به زیر نمی آید چون نمیتونن بگذرن از نفسشون گذر کنن خره دیدن که اداره میکشید حیوانه رو؟ این عمرد نمیشه از این جوب آب این بنده خدایی رد شد حکیمی اومد با این چوب دستی اسایی دستش شوری داد این آب رو این حیوانه تا که کشید از آب آبرد شد بعد برگشت رو کرد گفت شما چکار کردیم ما چه کشیدیم نمی اوومدرد نمیشد گفت عزیز من این تصویر خودش تو آب میدید این حیوان این اللا حاضر نبود پارو خودش بگذاره از خودش رد بشه وقتی که ندید خودش رد شد تا زمانی که انسانها خودشون رو میبینن رد نمیشن از موانع گذار نمی کنن. اما اگه از خود گذشتن بعد از همه چیز میتوانند بگذارند و اوج بگیرند و حرکت کنند اما این علوه و استکبار نمیگذارند یک حضرت فرمود قالو اولو و استکبارن. بعد می خب گفتند و حضرت برگشت و چی چی تا فقالو باز مجدد میگن. فقالو کفرن و اتوفا. اونو اولو و استکبار دیگه موجب کفر شده بود. در وجود اینها و موجب اتوف و سرکشی به خداوند. من اینجا این موضوعی ای رو باز کویتاه بگم خدمت دوستان عزیزان. خب اینجا امام در اون سطح بلند و کفرشر که این مستکبران می فهمن. رخصت بفامین من این خورترش رو هم در حد خودمون همین جمله رو بگم بین اعمال و افکار و اقاعد ما ارتباط و رابطه و معادله دسویه ای وجود دارد یعنی پاکیزه بودن افکار و اقاعد خروجی اون میشه اعمال پاکیزه و شایسته اعمال پاکیزه و شایسته نتیجه اون میشه تزاید افزایش ایمان و حقاعد پاکیزه این دو دوسریه است عکسش افکار پلشت نیات زشت و شوم نتیجه اون هنزل است در انتظار تلخیه و پلشتی های از اون طرف باز این خیلی مهمه اعمال ناروا گفتار ناروا کارهایی که اینها بلاخره پلید و زشت است متاسفانه نتیجه اون میشه تراکم اقاعد و تباهی عقاعد درونی انسان یعنی دهت دروغ گفتن در روز بدونید بلاخره کار انسان رو میساند شیشتاقی بد کردن در روز بدونید کار خودش رو میکنن تو سر مظلوم زدن بدونید عقاید انسان رو هم تباه میکنن این قانون الهی است این ارتباط بین عمل و بین عقیده بین گفته و بین عقیده این قانون الهی است و پیش میاد بزنید سند قرآنیشو براتون بگم از زبان وجود نازنین نازنی اینا و محمد محمدمصطفی صنم کان عاقبت الوین عسام وسوءا ان كذبوا به آیات الله بدونید عاقبت اون کسانی که کارهای زشت انجام میدن اینه که تکذیب آیات خدا هم میکنن. کوی من از میکنم بالاخره میشناسید يا آقای 23 سال میشناختش موجه اصلاً تو مسجد النبی آن اون نگاه میکنید میبینید هیچ عقیده این نیست که به سخریه می گیرد. قرآن رو، پیامبر رو، امه رو علیه مصلاة و سلام به ترین مطالب تو مجالس خانوادگی و غیره می به بازی و سخریه می گیرد. این همون آقای متدین قبلیست. چی شد که اینطور شد؟ ریشه رو که نگاه کنید می بینید پولهای ربویه که تو وجودش اومد. ریشه رو نگاه می کنید می بینید کمفروشی هایی که کرد. ظلم هاییست که به جامعه کرد پاره از نارفت و نام های اخلاقی است که انجام داد نتیجه اینه که امروز هیچ عقیدهی براش باقی نمونده این اون اعمال برمیگرده گریبان اعتقادمون رو نیگیره از انسان. فرمود اون اولو اون استکبار خوب شد کفرن و اتو شد کفر و سرکشی بر خدا قال و کفرن با تو با چی گفتن؟ فمرها و نصف فلیرج الان نصف کما کن فعمره هم پیامبر عمل کردن شد حالا. دیگه طبعا اینها که با این وجود بودن نه رسول خدا از اینها توقعی ایمان داشت نه امیر المؤمنین از اینها توقعی ایمان داشت فرزند حبی طالب هم خودشون هم که برای ایمان نگفتن مطلب تمام شد لذا امیر المؤمنین میفهمد فقل تو بدون درنگ. وقتی درخت برگشت سر جای خودش من معطل نکردم فقلت انا من علی گفتم لا اله الا الله لا اله الا الله من بشدت ابراز براوس کردب و گفتم لا اله الا الله یعنی امیرالمومنین در این معجزه پیامبر چی رو داره می‌بینه تجلیات توحید خداوندی رو داره می‌بینه و تجلّی ربّکل الجبل فجعله دکّاً اگر کوه طور از تو تجلی خدا امروز علی تجلی خدا رو در این درخت داره می‌بینه و به دست نبی مکرم اسلام لزوم به وحدانیت و توحید خداوند فرمود لا اله گفتم لا اله الله انی یا رسول الله انی اول مؤمن بك یا رسول الله من اولین مؤمنان به تو هستم به تمام وجود افتخار میکنم و بازگو میکنم که اولین مؤمن به تو هستم رسول و اولو من اقرره و من اولین کسی هستم که اقرار میکنم به ان نجرته فعلت ما فعلت و این درخت انجام داد آنچرا که انجام داد به امر الله تعالی به امر خدا انجام داد به اذن خدا بود اما تصدیقا به نبوتت این کار و این اتفاق به امر خدا افتاد که نبابت تو صدق و صداقت اون روشن شود و این درخت و اجزای وجود هم تصدیق کردند نبابت تو رو تصدیقن به نبابت و اجلالن لکلمتک اجلالن لکلمتک این جمعه هم جمعه لطیفیست اجلال یعنی بزرگ داشتن برای کلمه تو الان ما به جای اجلال وقتی میخوانی کسی رو بزرگ کنن چی به کار میبرن چه کلمه ای رو؟ تجلیل به کار میبرن این اشتباهه خیلی این کلمه اشتباهیه کلمه تجلیل از ماده جل میاد جل اونه که رو چی میدازن حالا دیگه ما نگفتیم کلمه شو بله, بله،, بله. جل رو میدازن رو بعضی از هی. تجلیل با کماد تاسف با کماد تأصف یعنی پوشاندن جل بر کسی این کلمه رو به کار نبرید این عدیبانه نیست علطه اجلال درسته اجلال اجلال از مأبه‌ی جلل به معنای خطر به معنای تنظیم و بزرگداشت است نه تجلیل اون تبیین معنوس چیز دیگه است در کلام عرم. اجلالند و من شهادت میدم من علی و اقرار میکنم که این درخت به خاطر اجلال شن و کلمه و سخنتو یا رسول الله چنین کاری رو انجام داد درست؟ خیلی خوب. امیر فرمود. حالا من اینجا حیفا میاد این جمله رو نگم. عرض به خدمتون رو هست که من اینو بگم و انشان الله فردا قسم پایانیه. انشان الله خطاب را خدمت دوستان بگم که محشره. یعنی امیر میرسن به اونجا که و اینی لمن قومه. من از جماعتی هستم که دوازده تا ویژگی دارم. به تعبیر امروزی امام، مدل سازی میکنه اشال فردا خواهم گفت اما همین میرسش رو بگیم فرمود من اول مؤمن به چهیا الله این جمله است که بارها از امیرون مؤمینشننییم که بارها فرمود که سبق تو کمعلان اسلام ترنقلام و من ما اووا بلوغ هومی یعنی این سبقت در ایمان به اسلام امیر یه چیزی نیست که کسی بخواد این ج رو کنه. این یه امر مسلم و بدیهی است عرض به گاهی هیچ فرصت نیست و وقت هم و عرض به یه جمله عجیبی رو دارد از خود ابن عبدالحدید نیست اینو نقل نغل میکند از بزرگی نقل میکند ابو جعفر اسکانفی از بزرگان رو با دانیه گفتگویی با جاحظ صاحب کتاب البیان و تبین این علم قدره احد سننت ادیب توانمند یه مناظری دارن که 70 80 صفحه حقل میکنه ابن عبدالحدیث این رو تو اینجا بعد به اینجا فا اما محدد چه بهل جاحظ به امامت ابوبکر به کونی اضل الناس اسلامان فلوکانه ها و احتجاجن صحیحا لحتج بهی عبوبکر یوم السقیفه اون یه چیزهایی گفته است در مورد عبوبکر ایشان فرمان اگر چنین می بود که ادعای تو می بود خود بیبکر بکر این ادعا رو در طول عمرش نکرد که انا اول المؤمنین انا اول المسلمی نکفت هیچ جا نکفت و ما رئینا سن ازالک در سقیفم این کارو نکرد بلکه رفت سراغی کی؟ عمر ابن خطاب عبابه گفت با تو بیعت میکنم اخذ بیعت عمر و ابی عبیده جراح گفت با شما دو نفر من حاضرم بیعت کنم و قال لناس قد رزی تو احد حاضین الرجلین من راضیم که یکی از این دوتا جانشین پیامبر باشند فبای اومن هما من شئتم و یکی از این دوتا بیعت کنید. ولو كان هذا احتجاجا صحیحا لما قال عمر ابن خطاب اگر این صحیح بود بعد از بیعت مردم با عبابک عمر نمی گفت کانت بیعت عبی بکر فلتح و قدلاه المسلمین شرها. از مشهورترین جملات تاریخی است. بیعت عبابک دست پاچگی انجام شد. خدا حفظ کند ما را از امور دست این جنینی ولو کانه احتجاجا صحیحا لب دعا واحدون من الناس و بکر فی عصر هو بعد عصر اگر این بود در زمان خودشون کسی این رو میگفت به كون هي سبقه الى که او سبقت دارد و اولین مسلمان ما عرفنا احدن ادعى ذلك رو نگفته در اون زمان الان الجمهور المحدثین لم ان ابو بکر اسلم بعد عده من این مهم نیست این که من میخوام بگم خیلی اسلام من ندارم تو این حرفی رو چیز بگم یا ثابت کنم خیر میخوام سخن امیرالمومنین رو شرح و بستش رو بگم که این رو بازگو میکنم که با بعض از آراء و نظریات این تنافیش روشن باشه خدمت دوستان می جمهور محدثین ذکر نکردن اسلام عبی را مگر بعد از یه ادیمن جمله یعنی جمهور گفتن اول اینهایی ما رو بردن بعد عبا بکر اینها چی و من هم علی ابن عبی طالب و جعفر جعفر ابن عبی طالب اخو و زید ابن حارفه سرخانده پیامبر و عبوزر القفاری و اماروبن انبسه از سلمین و خالد ابن سعید ابن لعاص و خباب بن لعرد اینها تقدم داشتن اسلامشون بر عبابق توجه هم دید. این فراوانه دیگه من نمیخوام وقت رو به این جهت بگیرم که از مسلمات که بدون تردید همین که قبلا هم گفت که اون روز خانه ای نبود روی زمین که در اون توحید خداوند گفته شود و نماز بر اون برگزار شود الا خانه ای که من ثومی آن بودم یعنی اول پیامبر بودند اونگاه خدیجه بود و سوم و اون من بودم در اثبات این نکته عرض میکنم خدمت دوستان البته این جای داخل پرانتزی هم داره که بسیاری از بزرگان احرسانت میپذیرند این رو محق بعد یه ایرادی میگیرن اینجا بعد میگن خب اسلام علی ابن ابی طالب تو چه سنی بوده؟ رو این سن به تحبیر آقایان یه انقلتی میکنن میگن خب سنی ایشان شاید در یه سنی بوده هف سال بوده هشت سال بوده شید. یک دیگه اینجا این حرف ازیان که اینام هم البته میدانین بین یازده تا پونزده سال دیگه شرایط سنی خب اونجا هم دیگه بالاخره مشخص هست اون بلوغی که شما میگویید به معنای رسیدن به سنده بلوغ شرعی ملاک برای چیه؟ ملاک برای تق... تکلیف شرعیه نه ملاک برای فهم شرعی نه ملاک برای عقاید و فهم و ادراکات یعنی بحث تکلیفه که واجبات بیاد رو دوش واجبات مربوط به احکام احکام فقی نه عقاید نه اخلاق اینو که ربطی به اون بلوگ نداره اصلا این کسر ربطی به اون نداره اصلا و اینجا با و آتیناه الحکم مگر خداوند در قرآن نمیگوید در حق سبابت یعنی چیز سبابت که قبل از این سنه ما به انسان ما به یحیی حکم رو دادیم این وقتی اینها چه بودن؟ سبی بودن از اون فهم و ادراک و ایمان و اقاعد به اون بحث تکلیف و واجبات شرعی که حالا واجبت شد یا نشد دخلی نداره این یه موضوع دیگه بسیار خوب حالا امیر فرمود من که اینطور گفتم گفتم اشهد و الله لا حالا اشهد که نه گفتم لا اله, اله لا من اولین مؤمنه به تو هم یا رسول الله و اولین کسی که اقرار میکند که این درخت به عمر خداوند چنین شد اما متاسفانه فقالالقوم همونهایی که خواستن تغاظا کردن ادعا کردن میپذیریم شهادت میدیم فقال الگم کلهم بله اتفاق همشون چی گفتن گفتن بله ساحرون کذا گفتن ساحرون کذا نعوذ بالله عجیب و سهر سهرش هم خیلی دویست. خفیف خفیفون فی خفیف یعنی طرده است خفیفون فی یعنی طرده است یعنی روان توسه دیدی چه میون درخت جا جا کرد نصفشو برد نصفش آبود همش بو همش دیدی چه اون عمل کرد خفیفون فی خب انتظار دارید این هم دیگه عرض به نه مربوطه به پیامبر مکرم اسلام کوتاحرز میکنم در طول تاریخ از نوح بگیرید تا پیامبر به تعبیر امروزی و آمیانه ما وقتی کم می آوردند مخالفان پیامبر در قبال اون چه از انبیا الهی دیدن میشد سریع میگفتند چیه میگفتن سحر انهزا الا سحر و این چه این چرا اینو میگفتن به دو جهت خب کاری که پیان بران الهی انجام میدادن کار خودشون نبود کار خدا بود میخواستن بگم نه این کار خدا نیست کار خودشونه خدایی نیست است یک میخواستن شوکت خود قداستشو بشکنن به زیر بیا کار رو یک دوم سر چیزی نیست که به اون رغبت و میل اصیلی باشد یه عمر ناپسند استهزار دارید از مسائلی که خدای رحمت کند چیخ بزرگوار انساری در کتاب مکاسب مکاسب محرمه رو با حرف هم الف همزه شروع میکنه تا آخر هرچی مکاسب محرمه در اسلامه تو کتاب مکاسبش اول اینها رو می نویسند بعد بالعدلت الاربه حرامون بالعدلت الاربه یعنی کتاب سنت عقل اجماع عدلش مطرح می کند. یکی از اونها از سحر. آموزش سهر حرام فرا گرفتن سهر حرام پول دادن به صحر حرام محض و مبین بازار کردن ساهران حرام محض و مبین اصلا یه چیزی مسلمیه مگر در مواردی که انسان بخواهد ستیزه با ساهران بکند و بخواد ساهر رو از میدان بدر بکند یه چهار تا عدبیات کار اون رو بلد باشه تنها وچه استثناش اینه توجه دارید یه مقوله باطل بیربته وقتی خداوند میخواد اون شرور بنیان فکن وجود رو مطرح کند یکی از اون شرور بنیان فکن چی میشه؟ در کنار ومن شر قاسق نعضاوندن بعد میشه ومن شر نفاظ هاتفل از این عباطیل به خرافات از این خرافات باطل شر یکی اصلا به خدا پناه برد آن بود از طول تاریخ یعنی گوش کنید عرض بنده رو عزیزم سهر واقعیت هست نه حقیقت یعنی واقع شده سهر سهر بوده همست اما حقیقت نداره من نمیخوام بس رو کنم و اما حیف میاد یاد این جمعه رو نگم ببینید دو تا نیرو تو وجود ما در حال با هم باهم. دو تا قوه و نیرو یکی قوه عاقله ماست یکی قوه واهمه ماست یکی قوه عقل یکی قوه و عقل اون قوه ایست که سغرا و نتیجه مقدم چینی می کند، نتیجه رو می گیرد رد و قبول میکنند. اقمازم اقماز هم نداره قوه عقل در وجود اند. شوخی هم نداره مگه کسی رو پوشونده باشه که عقل کار نکنه ولی اگر عقل فعال باشه تو وجود انسان حجت الهیست کار پیامبران در وجود انسان می کند. شأنش برابره با پیامبران الهی عقل در وجود اما نقطه مقابلش قوه وهمه میدونید وهم چیه کارش تو وجود انسان حد کردن به ادراکات عقلی نه کی گفته اینطوره قوه وهم اینطور نیست وهم خروجی نداره چیزی نداره قوه وهم فقط ادراکات عقلی ما رو تضعیف میکند برداشت های عقلی ما وهمی وحی الهی مخاطبش کیه؟ عقل سحر مخاطبش کیه؟ وهم سحر با قوه واهمه انسان ها سرکار داره نه با قوه عاقله به همین خاطر کسانی که قوه و جوهر عقل بالایی دارن هیچ تأثیر پذیری از این عباطیل ندارد اما انگام که قوه عقل کم میشه و وهم قوی میشه بعد ممکنه سهر به این بازی هایی که با وهم سر و کار داره ممکنه اثراتی هم داشته باشه وقتی به شما ده مرتبه میگان آقا نیفته نیفته نیفته نیفته بار یازده میفته این شه قوه وهم عقل شما خط چه خورد؟ عالم فهمیدم من داشتمو که گرفتم میرم قوی وزنه چقدر نیروی دست منم قوی صد سالند دست من باشه نمیفته اما وہ میگه نه ممکنه حالا یک اتفاقی بیفته تو ذهنت جوری بشه دستت جوری بشه این یک لغزندگی این هی میاد خرچه میکنه باوک برغل بالاخره میفته سحر از این نوع عزیزان قرآن میگه یخیلو علیهم من سحرهم انه تساقا صاحران تخیل ایجاد میکردن تو ذهن مردم که این داره راه میره یعنی خیال پردازی وهمه نه واقعیت فریب این هنفار نخورید و پناه به خدا میبریم از اینکه که متدینین به این مسائل گرفتار بشن پناه و این درد بیدر ما نیست که بوده از جامعه در اسمان شما هم هست همین الان در مشهد و رضای ما هم هست همین علا کسانی که این بساط عباطیل رو پهن کردن و بدتر از اون کسانی که به سراغ اینها میرن پول به اینها میدن برای که نمیدارم این وقتی ای بسته است و وقتی باز شده است و فلان این این شده است چی اون شده است یا عباطیل بیهودهی ای که اینها با توحید منافات داره انسان رو به شرک می چنین مطالب باطلی و عباطیلی بالاترش رو بگم حتی ما داریم سا هرول مسلم یقتل ده به یک جاهایی می رسد که مجازات سهر قتل در اسلام بس من مخفضش فرموده قرار این که میخواستن اون مسئله رو بکشن، پایین این قوه عقل مردم رو تخریب کنن، اتهام چی می‌زدن؟ سحر می‌زدن، بعدم میخواستن شخصیت پیامبران رو مثل ساهران بکنن. آقا اینا پول دن... دنبال پولن، دن. اینجا سیلک بزنن، پول دریارن، اینجا بساتوشون بگیرن تو این شهر، بعد برام فردا جای دیگه دنبال درآمد مادی باشن. و حالی که قلندران حقیقت به نینجا و نخرند، انبیا ام... الهی فروختن همه دنیا رو. اینا این دنشان بودن تفقیه از کسی نداشتن لا اصحال کم علیه اجرا من صاحرون کذاب عجیب و سر خفیفون فی حل کفی امر که فی امرو کم حسله هنزا یعنونانی. بعد اشاره کردن گفتن یه یک کسی مثل این تو رو قبول کرد یعنی من علی رو چه کردن تغییر کردن گفتن بله حق تو یک آقا جوانی مثل این تو را قبول کند اما ابن داره و انی لمن قومه بله من از جماعتی هستم دوازده ویژگی را همین را مبارین وطرح است فوقلاده هست انشاءالله فردا در روز پایانی انجامن خدمت دوستان بازگو خواهیم کرد متشکرم و سلام علیکم و رحمتون